جالسه بیست و هفته الله الحمد لله دلیل امنی و مجتمع تبدیل که در بسطاید مسته نفر بول محدد سینه خصوصا امید در رابط با اینکه ایشون به نظریه رو تقسیم کرده به سرست بکنی که علوم نظری که میشن به ماده ای که مادهش حسی باشه دوم که غریبه به حس باشه و سوم و اید از حس به این تقسیم مندی ناظره بهیه که یقینیات ستی که در منطق خوندید اون دو قسمش اجاز اولیات و ضروریات گرفته و چهار به اجازه موارد غریب به حس میدونه و بیر این شیش رز مذیبی نیگات و ضروریات ست و جوزه مغازه بعیدت هست می دونه پس تقسیم همین از ترابادی نازل باونه که اون ضروریات ست منه تقسیم میشه به دوبست از ولیات و فتریات این جوزه و ولییات و واضحاته ولی محسوسات و متواترات و مجربات و رو این ها رو اومده از موارد قریب به و باید شده اینکه احکام عربیه در موارده که ضروری باشه از درولیات و فتر یاد در موارد غریب به مثل همین چهار مورد از این ششتا باز قاعده به حسیت فکر ولی در خارج از این موارد قاعده به حسیتی یعنی تمام مواردی که نیاز به قیاس منطقی داره ایشون قاعده بردن حسیت عدله و مقدمات ها تقلیه حالا چند نفر این مسلمشو خوندن؟ خونه نشده همه این چهار روز همه این مطموع بخوننده یعنی هم قول امین از رو هم فرمون جرائری رو و هم محدث بحرانی رو حالا بخونید اون قسمت که نکندید بخونید این قسمت های من حیثور مجموع مطالبی که از داره میگه و اون روم رو, رو پسیم می کنه به سب اسم منتهي به یک ماده ای یا محسوس یا غیبی بینسه یا بعید به اون ماده یعنی پیاس این مون یان تا یه ماده ته اون ماده نمیاد مواد دلی هست که در منطقه اون ماده همون مواد داریم اون ماده بعضی موارد بدیهی یعنی جدا بدیات و قدیات نیاز نیاز و قیاس هستن مگر یا <تصالح> قریب به که در اون چار قسم از اون شیش قسم قریب به معنی به این که متوقف بر یک قیاس مستتره یعنی در مواردی که میگه ماده حسی یعنی اصلا قیاس مassemble در مواردی که میگه قریب به حس یعنی قیاس میخواد و ماده قیاس قریه قیاس مستتره و قیاس مستتره امارت هست از یکی از این دو تا ریاس یا تو معنی مالی خوشرمان معنی بده این در کودرا میگه برای اینکه موافقه بشه با عوام یوسی به این بحثش و خارج از دونه در مواردی که میگه مونثی بشه به ماده حسی یعنی اصلا ریاس نمیاره غالبا ریاس مثل بی یان که عطا هیوانا تامین رو دارن و بدون ریاس در اون که نگه قریب به حس یعنی خیاس داره واقعه قیاسش مستدره در مواد که میگه بعید از حس یعنی خیاس مستدره منطقی رو میخواد در اون مواد که قریب به حسه و گفتتایم قیاس مستدر میخواد قیاس مستدر یکی از این دو چیزه یعنی یکی از این دو قیاسه که همه دارن و تو ذهن افراد باطن افراد تو زمین افرادین هست منطقه استفار داره یه مطال اتفاد بخواه یکی از این دو ماده قیاسی یکی شبارت باشد از اینه که از صدفتو لا تتکر اتفاقی تکراری نیست یعنی تکرار نمیشه اتفاق یه بار اتفاقی قیاس و این تجربیات و محضیات و متواطرات اینها بسمی از علوم نظریه منتقی میشن به یک ماده یک ماده قریبه به حسه یعنی متوقف بر یک قیاس باطنی مستطره که بارد باشه از اینجه از صدفه داده میکرده هست طب اتفاقی تکراری نمیشه, تکرار نمیشه. برابعی در تجربیات میگن اگر بود اتفاقی باشه ده بار این ترجمه بره انسان تجربه نمیکرده، بر اون چیه اتفاقی یه سببی هست از صدفه داداتا کردن این یک قیاس موارد قلیب به قیاس دوم حکم الامثال فی مای و فی لا لای واحد یعنی حکم الامثال واحد هر چیدی مثل هم باشه ارگامش هم مثل هم ده بار این اتفاق افتاده از این به بعد هم اتفاق بیفته این همین این وارد امثال در تجربیات و حفظیات و مشاهدات و متواترات باید میشین به این اینها قریب به حسه به خاطر اینکه اینها یک ماده قیاسی مستطع دارن بیشتر از میگه وقت نیست من اینها توضیح بدن و قصد سه بود که بعید از حسه یعنی بعید از هسته دیگه قیاس مستطر زمیری ما نداریم قیاس منطقی سینبی و عرصتویه بعید از حسه بدون اینکه انسان موانی حکمت رو بخونه یا منطق رو بخونه نمیتونه قیاس اقام کنه بعید از حالا بعد قاعد شده به اینکه که موضوعات اقلیه نداره به خاطر اینکه که منتقی میشن به یک ماده که اون ماده یا قریب از حسه یا بعید از حسه و علاقه لطبیل این حسی نیست وقیه حسی نباشه به دردمانه میکن و دلیلی هم که میاره یکی از این دو دلیل یکیش این که قصدت خطاب اشتباه در اروم عقلی گفته کلاسه به قرقا صوفیلی اشتباه دارن خطاب اشتباه زیاده بنابراین نمیشه اعتماد کرد بعد میگنه و دوباره که ما روایاتی داریم روایات خاصه وارده به این که تمام اعمال انسان باید با دلالت ولی خدا باشه شما هر کاری بخواید انجام بدی باید به دلالت ولی خدا باشه بنابراین به دلالت عقل باشه و چیت نداریم این نهایت جمود بر روایات و دیگه عم و اخباری گریه و لبایاتش هم از آقای مراجعه که از این اول و ساید و و طول عبادات و همچنین جلد هیلده از اون جلد های بیزجلدی و ساید و که لبایاتش هم اومده دقیقیش هم خود شیخ متعرضه علا کل تبدی اخباری قائل به عدم حسیت تمام مقدمات عقلیه به نتاق یعنی هر چیزی عقلی باشه عقلی ام از اینکه عقلی باشه یا عقلی اولفی باشه یعنی حتی تنقیه مناط رو حتی مفهوم مخالفت رو حتی دلالت اختزار رو دلالت تنبیر رو و تمام این موارد گفته عقلیه بنابراین جمعوت مطلق و لفظ روایات و آیات در آیات که قایدن به عدم و جیت تحصییت نده زواهرش مال ما نیست مخصوص به تیرنبره بنابراین ما قرآن رسلن نمیفهمیم و تمام قرآن رو جز متشابهات می میدونم با اینکه خود آیات قرآن میگه بعدی از آیات محکمات بعدی از متشابهات، اخبار میگه همش متشابهات بزن جموده و یک نوع افراد و تفریده تفریده الان کل تغیینا رو این طور شدن همه اقلیات رو بستش کردن حالا یا میشه ما اینها رو برگردونیم به یک مبنایی که مفید باشه در این اصول یعنی از این شکل ظاهری که امین از مطرح کرده از این شکل در به یک شکل دیگه در بیاد صورتش رو عوض کنیم و وقتی صورتش رو عوض کنیم به درد اصولی این بخوره این شکل بمونه به ما نمیخوره هم بحن به اخباریه هم بهن به اصولیه که هم این همه وقت بذاریم اینا رو دستش کنیم ما چقدر مگه عمر داریم بحث طلب کنیم که همین از سرابادی چی گفته بود چی گفته اینا رو بیاریم بررسی کنیم و نوع این شزوزاد از اینی که زام از این هیته های علمی و محیط های علمی دور میشن وقتی کسی از محیت های علمی دور بشه همین حرف که خلاف خیلی از مبانی باشه حتی در کلام حتی در فصل حالا سبه که مثلا بزرگترین شارح کلمات ها در خیلی از موارد ما اونا رو بیاریم رمگشون کنیم به اینجینا ناظرلای چی نمیفهمن خوب نیست حالا ما کاری نداریم یعنی فرصت هم نیست حالا در دوره حساب خیلی در این موارد ما توضیح دادیم و کلمات از و دیگران رو نقل کردیم ولی میازی نیست اطاله کلام میشه اون چیزی که مفیده میخوام بگم تو این دوره و اون اینکه فرق از بین علوم حقیقیه و اون اعتباریه این تو جزوه نوشتم و ولی آقاین بازی یادداشت کنن قیدی دل این بر کتاب یعنی همیشه عادت کنید بنویسید و تو جزوه ها نوشتم تا سرمیسته در آمان ماده است که اولوم میشه به علوم حملیه و علوم اتباویه. و این دو تا دو سن و متأکزند. دارای تقابل منفی، یعنی مقابل. یعنی آن علم فلسفه ضعیف ترین علم اصول. اون چیزی که در فلسفه میگن قویترینه در علم اصول ضعیف اونا بچه‌ها ما خاص میشن. درس علوم البته این مبنا تقسیم میشه به سه ما ورشناسیات و فسیات رو که فطرت انسان خداشناسی و فطر حیوانات هم همین چیزاست اینا کاری به این چیزا نداریم ما علوم رو داریم میگیم از فکریات و اون زمائر خارجی علوم رو داریم میگیم علوم تقسیم میشه به سرس. قسم اول علم حسی قسم دوم علم حدسی و قسم سوم علم ابلی علم حسی علمی که با دیدن انسان علم میدان بود یعنی از طریق حواست. اون علمی که از طریق حواست باشه به انسان برسه مثل این که من ببینم الان روزه الان ببینم آفتاب زده الان زن ببینه خونه هی زده بیرون و امسان علم حسی بهش میگن با حس انسان علم می گره علم مستند به حس رو میگن علم حسی اسم تو اون علم حسیه علم حسی یعنی قریب به حس قریب به حس محسوس محسوس نمی یعنی قریب به مثل چی؟ مثل مفاهیم مفاهیم قریبه بهشتن از این آفرست از خودمون هم بنویسید که معلوم باشه کدوم دون قسمت چی دارم میگم نه بعد از اونا که تازه نمیشتن علم حسی استلاحا بهش علم حضوری و منشه حواستم هست منشه هم حواسته. علم حدثی استلاحا بهش علم حصولی میگن، علم تعبری میگن، علم غرفی میگن، علم عادی میگن، اند منشهش تجربه و حد و تواتره یعنی منشهش این ست تجربه حد و تواتره و علم اقلی منششت یاس منطقی عرزتیه و سینبیه بزایی علم تقسیم میشه به این سب اسمه این صفحه 91 یاد داشتون توی 91 ناردارم میگم مراجب کنین علم حسی که متوقف بر حس ظاهری و مشاهده است علم حدسی که متوقف بر تجربه و تواتر و حدسه و علم عملی که متوقف بر تفکر و تعمل در ضبن عقیس است و علوم حضوریه فرسیم که از محض بحث ما خارج علم, علم حسی متوقف و هیچ خیاسی نیست یعنی خیاس علم حسی متوقفه و هیچ خیاسی نیست با کباشه و امارات و مشاهده غالباً به دست میاد و از موارد تصدیق بدیهی مثل اینکه ازنا تصدیق کنه به گشت و, و نهار موجودون و هازادمون و ذالک مگیتون و ها این علم حسی میگن این علم در علم اعتباری مثل علم اصول از طویترین انها علم طویترین انها علم در علوم اعتباری بخواد که کاشف از حقیقت و کاشف از ماهیت و هیچ تبدیلی در این علم راه پیدا میکنه بنابراین علم حدسی در علوم اعتباری مثل علم امور و جزمیه و سبوت واقعی هم داره. در مرتبه دوم علم حدسیه علم حدسی علوم استحصالیه علم استحصالی بشین علم حسی علم حصولیه، ولی علم حدسی علم استحصالیه استحصاله نه حصول. ما استحصالش نمید مثلا مفاهیم استحصالیه حصولی نیست من طوق هر دلیل حسولیه زیدان قائم ولی مفهومش مفهوم قدردهی که مفهوم داره اونها دیگه استحصالی حدیسی حساب میشه یعنی غریب به حسه محسوس نیست غریب به حسه و اسمش سه بوم میشه استنباتی منابراین علوم تقسیم میشه تبقیه این اسم و این تعبیر به علوم حسولی استحصالی استنباتی بعضی علوم اصولیه بعضی از 30 سال میشه تا استنباط میشه اولی رو حسی هستی حسی سوممی عقلی اونا در اولی هیچ مناقشه نیست و حقیقت داره اولی یعنی علم حسی که علم خصوصی باشه حقیقتش بعد مناقشه نیست منطقه دفمی یعنی علوم استحصالی و علوم استنباطی به اختلاف و ظاهر افباریین انکار هر دو بسن. یعنی هم علوم استحصالی رو حجت نمیدونن هم علوم استنباطی رو حالا مثال میزنیم هم مثال بزنم این حالا مقدمه است برای اون واقعیتی که حسول هست اونها علم حصولی رو حجت میدونن یعنی هرچی حسی باشه اشکال ندارن بگه یه استحصالی باشه استحصال این استفاده دیگه طلب حصوله یعنی نگاهید یه طوری ما در بیاریم این مطلب رو این مطلب در نمیان مثلا در علم حصولی عقیم و, عقیم و رو به هر عرفی بگیم یه نگه در, در وجود داره نیاز به تعمل و دقت نداره به خلاف ومسه و بروسه کن در ومسه و بروسه کن میگن یعنی آیا به بعد سر یا به تمام سر اختلافی به این آمده بخواست حالا با قطع نظر از روایاتی مفصل این آیه اختلافی این باعه باعه تبعیزه یا الزاقه بازی گفتن مرس مطلقه تمام سره یعنی تمام سر باید مرس بشه بازی گفتن مثل خاصه نه باعه تبعیز بازی هستن نیازه استحصال دنه یعنی یک اعمال دفتت غرفی میخواد نه اعمال دفتت اسم دوم رو اخباری قائل باید بردم یعنی اگر دوایات مفصلی نبود اخباری باید به با اجمال در این آیی هست بسید دوایات احلویت رو بیاریم و, بیاری و آمودیت، باید برامان اوصیت روی باشه که داره اونها با میشن به اینکه که سر رو میشن بگیم و بسم سر که استنباطیه یعنی نیاز به اعمال دفقت اوصیت داره یعنی یک دفقت فاعد و دف یک مقداری مشکل داره و بعضی از مواردم خیلی مشکله. لذا بین اخباری و اصولی ما در علوم ریاضی و هکمه فهمساری ها و موسیقی خلاف نداریم هیچ کدامشون موسیقی باز نیستن و هیچ کدامشم ریاضی دار نیستن کاری هم به این علوم نداریم ما بحثمون با اخباری در ادله شرعی و از سلاباد اومده مثال به ریاضی یا قدایی آزده اون زده غصور در تعبیراتش یعنی مدعا خودش رو نمیتونه اثبات کنه از اون طریق وارد شده وعله در دلیل دومش دو ما گفته نه اسان کس که این ان دلیل اول م قبول نکنه ما روایاتی داریم که باید تبعیت از ولی خدا باشه و و غیر روایاترا رو ما قبول نمیکن اختلاف بین اخباری و اصولی در یک مسئله بعضی ها قاعدا به در 48 تا مسئله اختلاف دارن بعضی میگن در 28 تا مسئله اختلاف دارن بعضی میگن 29 تا مسئله اختلاف دارن بعضی میگن 11 تا مسئله اختلاف دارن و اینجه به در عرصایل رسولیه قاعد شده نگه در یک مسئله اختلاف دارن اختلافش در یک مسئله و اون یک مسئله میگه اشتهات جایل یا logical داره اخباری میگه اشتهات حرام اجتهاد حرامه چون هر اجتهادی در مقابله ننده. هر اجتهادیی مقابله ننده. اونها قائلن. ولی اصولیین میگن نه اجتهاد جایز بلکه واجبه. باید چیکار کنند؟ پس ها در یک چیزه، در اصل اجتهاده. اما بر قول وحید بهبهانی که اونها قائل به حرمت اجتهادن اصلا اجتهاد مطلق رو اونا ممکن نمیدونن یعنی اجتهاد مطلق ممکن نیست اجتهاد تجزی رو باید شدن ولی اصولی هم به امکان اجتهاد مطلق یعنی ولو به نحوه مطلق این نظریه وحید به هم نظریه دوم اینه که اختلاق اخباری و اصولی در یک مسئله هست منطقه نه در اجتهاد انصال ها اجتهاد از بروعاتشه. اینها در اصل موضوعی که اختلاف دارن عبارت است از موضوع شناسی عدله و لسان روایات که آیا ما جمود برای موضوعات مقام اثبات بکنیم یا موضوعات رو یه مقدار تغییر بدیم آیا موضوعات احکام و روایات ثابته یا موضوعات متبقیرن مو بنابراین بعد میگرده اختلاف جوهریشون به یک مسئله که اصولی قاعده به تغییر در موضوعاته ولی اخباری قاعده به هم تغییر در موضوع. یعنی هر موضوعی در لسان و در شده همونه یعنی هر هم نداره مناسبات حکم و موضوع رو دخیل بدونه یعنی دخالت دادن مناسبات حکم و موضوع و قرائن و شباه زمسالین ها در که اخباری جایز نیست و اصولین ها رو جائز میدونه بنابراین برگشتش به برگشتیشه که اونها موضوع اصفاتی رو همون موضوع ثبوتی میدونن ولی اصولی میگه نه موضوع اصفاتی من ممکن که موضوع ثبوتی نباشه و این چیزهای دخیل باشه درش و ما اون چیزهایی که دخیله در میاریم پس اختلاف جوهری بین اخبار و اصولی برگشتش به موضوع شناسی این مطلب خیلی مهمی حالا خودتون تحقیق کنید نظر وحید بهفانی گفتم نظر دیگران هم معلومه. نظر محسس بحرانی در مقدمه یه حدایه و مراجعه کنید اونم یه حدای دیگه داره حتما این مقدمه ها خوندن دیگه تا حالا بحث عمده که مترطب میشه برای این تقسیم سلاسی که برای علم گفتیم که علم حسی و حدسی و عقلی از نظر اصولی علم حسی قوی در رتبه دوم علم حدسیه و در رتبه سوم علم عقلیه این این راه قیاس انخابین ها به دست و منطقی باشه و از حس باشه ضعیفترین علم حساب میشه در علوم اعتماع در علوم حقیقی برعکسه و این همان معاکستیه که گفتیم هست در علوم حقیقی مثل فلسفه علم عقلی قدی ترین علم حسی قطبه رو و علم حسی رتبه به بوم رو داره بنابراین ضعیفترین علم فلسفه قویترین علم در علمونه. و اگر کسی از اینها پفلت کنه به امثال نظریات امین از که ما خیال کنیم فلسفه با علم اصول یکی دیگه وقتی قیاس در فلسفه قوی راه برا تحصیل علم باشه در علم وصول هم باید همین باشه با اینطور نیست بنابراین زنیفترین علم اصول که همون علم منطقی و عقی باشه ترین علم فلسفه است. اگر کسی قایل به این تعاقص نباشه به خط میفته به اشتباه میافته و به همیشه دنبانی که ما بر احکام شرعی قیاس اقام مثل آغازی که هی از راهای منطقی کبرا و صبراه بچینیم بگیم این حکمه بس صبراه و چیدن در علم اصول نهایت وحن به علم وصوله. بنابراین نظریات متاکسی میده و نظریاتش به خطا میده این فرمولش به اون فرمولها ها فهم میکنه ما نمیتونیم در علم اصول و فکر بیان بگیم این صبراه و اون کبرا و نتیجه به خاطی اینکه اینجا یا ذهیل ترین ما میگم که اقرار دیگه راه در این موضوع. در درست نگردنه، نه تو منطق شما که گفتن که چیز با برای بده درست از قیاس منطقی در اصول فقه گرفته باشه، ضعیف که میکن نه ما حالا نشده سوگرال کوگا درسته شد شما به چه صورت مفهومه در صد مثلا هیچ ارتباطی نداره حالا معلوم میشه ارتباطی نداره ما میخوام بگیم این سه قسمی که گفتیم علم حسی حدسی و عقلی این در علم اصول قوی ترینش همون و ضعیف قیاسی و منطقی و عقلیه اینکه ضعیف و قوی تو حجیت چه معنی اینه مثلا ما تو کی دیدیم این قدرت هست یا نیست یالا داریم با پیش به چیه که اون معیار اصلی علم حسی در علم افقولی ولی ما علم حسی از علم حالا ببین هیکل اثنا نجوم خوب اونها علم عقلیه اونها میگن امروز هلال نشده ولی حاکمشن وقتی بگه شده شده دیگه با کاری به نجوم نداریم چرا یک گیر میدن به نجوم میگن نشده با حکم حاکمشن ثابت میشه یعنی زبطی نداره به عصر مثل که آیا هلال شده یا نشده اول ماه شده شاید هم نشده سه روز مونده به اول ماه وقتی میگن امروز ما عیده یعنی عیده تمام میشه ما یا رو به همیری یاد خیاس کنه این معیار خودش رو داره وقتی معیار خودش معیار دیدن همین که زن ببینه خون ازش اومده این محکوم رو به هید میخواد در واقع باشه میخواد نماشه بله اونا رو مدونم ن همه میگن باید به ودهیات بررده وله علمی حاصل نمیشه ولي ما به ب حس برگرده وعله همه دا ذوب ماله صدرا در اسفال نه که بررده به حس ا حس که انسان منتقل مشسته هالا کا ندره ما باید نظریات میخایم بگیم رسال مکاسب اصلا شعنش امینه مطالب خود کتاب داره امین از خرآبال چیزای فته شخ مد نا ردش اونا مرتب تو خوندی پیش متوادی کردین خیلی مطالب مفید فقهی اصولی نداره از روش نخوندی دورها دین. دور که خلاص ما گوش بده. ما بگیم که بین علوم احادیثی و اعتباری باری ما اینجا نمی تونیم بیان قیاس بامه شده بنابراین درسته. اینجا قیاس نمیخوایم علوم اعتباری تن و این درش هست. حسی که قوی ترین و بعداً منتسب میشه به عقل. یعنی ضعیف و من هر حکمی میره شما با شکل اول بخوای اثبات کنه ضعیفترین حکمه ولی در فلسفه هر حکمی میره شما با قیاس اثبات کردی قوی‌ترین میشه هر چیزی با هیچ اثبات کردی ضعیفترین میشه حالا نظر من اینه شما خودتون مطالعه کنید شاید به این نظر دیگه دلیل هم در جزءه نوشتم این مقدمه مقد... اصل مطلب اینه اصل مطلبی ای که به درد فقها و اصول بخوره و مفید باشه براتون اینه که این از ظهورات الا اقسام ثلاثه ظهورات یعنی علمی که علوم نظری که امین از طراوادی گفته بود ما در یک مرحله آوردیم تقسیم کردیم به سه قسم حسی حدسی و عقلی حالا از این مرحله میریم بالاتر که خیلی محسوس بشه ملموس بشه براتون چون کسانه که رسایل مکاسب میخونن میخوان قوه تفکر پیدا کنن برای استنباط احکام کسی اگه میخواد امتحان شفایی بده ون امتحان کذبی بده عمرش اینجا تلف نکنه به خدا زرر میکنه کسی به خاطر این بخواد این کلاس بشینه کلاس هم زیاد زیاد تو حوضه که میخوان متن بخونن امتحان پاس کنن دانشگاه میخوان برن جامت و زهره میخوان برن برن درس دیگه اینجا من مخالفم با همه این نظریات و این یه صدیقه هست هم اینطوری من اینطوری درس میگم این مفید براش بشینه مفید نیست دستشم میبوسم و برن درسای دیگه در خدمتشون هم هستن اینطور نیست کسی به درس دیگه بره دیگه ما با برسنی رابطه کنه خیلی الان هستن درس دیگه میرن و من هم اعتباط د هیچ ارتباطی بین این ها نیست که حتما کسی بخواد با ما رفاقت داشته باشه حتما باید این کلاس بیاد این نیست این یه سلیغه است. به نظر من این مثلا مفید تره به نظر دیگر هم اونها مفید تره من من دارم میگم که بین این اقسام علوم نوم منطقی هست اصلا ضعیفترین علم اصول قلیترین علم فضل فضل اونو من دارم میگم آلا از کس کاری نداریم من اعتقاد دارم حالا در مرحله بعدی این از ظهورات علا سلام. اون چیزی که مفید برای شما ها اینه یعنی از مطالب از سرابادی برسیم به این نکته که ظهورات در فخت برسید بعضی از ظهورات ظهورات بدمیه بعضی از ظهورات ظهورات سانبیه یعنی قریب به حس و بعضی از ظهورات بعید از حس ظهور قبلی حسی ظهور قریب به حس و ظهور بعید از حس اصولیین قاعده به حجیت همه اینها اخباریین قاعده به حجیت ظهور تدریج اولی بدیهی و دومی و سومین قاعده نيستند یعنی ظهور حصولی ظهور است و ظهور استنباطی حصولی این همه رو هم وارد و برای هم میخوام سه تا مثال بزنم و د این سه تا مثال شما فکر کنید مثالهایی های پیدا کنید. مثال برای مواردی که ظهور حصولی باشه، بدبی باشه حسی باشه عقی ای و خیلی که چیزایی که به هر عرفی بگی میفهمه وجوب استحباب کراحت حرمت وضع تکیب هیچ مناغشهی درشت نیست که ابیم و یعنی وجوب نماز بلی جمعه این ظهور حسولی تدوی حسی همه میفهمه قسم دوم ظهور استحصالی سفه 93 نوشتم این رو استحصال از لسان دلیل بعد از اعمال یک قصه غرفی نه دقت مثل ومسهو بروسه کن این با یا با حسابه یا با تبعیض غرفینا رو خیلی زود نمیتونه تشریف بده مگر اینکه که تعملی بکنه حتی اعلام درش اختلاف دارن تا سید ست به ولی علاقه کن به قابل استحساده با عبنات عمل و دقیقی استحصال میشه فعنددسان ار آیه دیست ظاهر انفیکون الممسوح و البعث ولیکن یمکن و استظهار زالگ به مکان با المفیدت لتبعیز فیلم ممسوح و حکم الاستظهار حکم ظاهر یعنی هر کجا ظاهر بر موجته استظهارات موجته برخلاف اخباری اخباری میگه استاراتو کیت یعنی یعنی محضو بر او کن اگر روایتی نداشت اخباری قائل به اجمال میشد ولی چون روایت داره که روایت ما رو گفته بردی است که امام علیه السلام این بردی است سر مست میشه در مکان با به خاطر روایت اخباری عمل میکنه و الا قائل به اجمال میشد و قائل به اینکه تمام قرآن جز متشابهات اینجوری قریبه به از نه نه اون فقط محسوس که با اون خاطر خیلی شهید متحرید در ده گمتارش اینطور طوری ای اخبارین رو رم میشون کرده و اینا حسگران بگیم ما و حسگران خاطر تمومی فیل آره دیگه چون استراب داره بعد اخباری ما همه داریم میگیم محدث بحرانی و صاحب بهار ما یه مقدار فرق دارن معتدل همه داریم میگیم فکر جمله که نسبت که اسم هم ندیم اونها مناقشه دارن محدث بحرانی خیلی از نظریات اینها رو مناغشه کرده صاحب بهار خیلی داره مناقشه کرده ولی من بزن همه اخباری همه این ظهور سانوی قریب از حسه که عرف با فهمش با اتکازاتش بهش منتقل میشه و این هم حسیتش خلاف اخباری فل جمله نافیه یعنی حسان نباید بکنید اقیم و صلاح رو میدونم ولی بمسه رو به روسته کن اینکه با اومده و با نمیدونیم چه کار است دیگن حسیت نداره اسم سوم که باز یقینا اونها قایل بردم و اصولی قایل بردم هرچیتشه ظهور استنباطیه یعنی بالاتر از استحصاله یعنی یک دقت فائده میخواد یعنی غیر ارفی دقیقت فائد که در عبارت نوشتم یعنی دقیقت عقلی و مافوق فهم ارفه ارفینا نمی حالا چیزهایی که ارتبهش منتقل نمیشه حتی با تعمل اینا حسیت داره یا نداره این ظهورات اینطوری استنبالی حسیت داره یا نداره اصولیین طررن با به حسیت هم اخباریین طررن باید هم حالا این مثال خیلی هم طولانی هم مشکله خوب آقایی نفتد کنن قبضه ذکر از فی باب فیباب سلاف یه مثال از فقر زدن منش در باق نماز جماعت باقایلن به اینکه یک حکم معروفی هست که اگر کسی بخواد نماز جماعت رو در کنه باید قبل از رفع رأس امام به روکو برسه قبل از رفع رأس امام به روکو برسه فل جنبه. این فل هم دو هم معنا داره هست یکی اینکه در این روکو داره اختدار میکنه دید رسیده در این موارد که این حکمو دارم میگن لذا خارج میشه دو مورد دو مورد اینطوری نیست یکی رکعات دوم و سوم و چهارم که اگر من به رکوع هم نرسیدم باز اشکال نداره جماعت درسته نمازم درسته و یکی اینکه از اول با امام بودم منتها هم نبوده یا جمعیت اجازه نداد من به رکوع اول امامم نرسیدم باز نماز درسته بنابراین که میگن ادراک رکعت به ادراک امام در رکوع قبل از رفع از منحصر میشه اختصاص پیدا میکنه به مواردی که انسان در حال رکوع امام تکبیر بگه و خودشو برسونه و اگر از اول با امام بوده منطقه حتی به رکعت اول به رکوع افری هم نرسید نمادش درسته رکعت دوم و ثبوم شهارم هم این حکم رو باز نداره انسان به رکوع هم نرسه نداره پس اختصاص داره به یک مورد که انسان در هین روکو امان تشبیر بگه ما بخواد به روکو برسونه شما به رکوع برسید باید امان در رکوع باشه اگر رأس شده باشه این نماز محکوم به بطلانه شما شک داریم دیگه اگر کسی شک بکنه که آیا به روکو رسید یا نرسید بدحل از او که در عربان داره نمازش باطله حالا این میخوام بگم که این ظهور استنباطیه آیا این حدیت داره که صاحب اول بهش قاعده و تمام معاصرین بهش قاعده هم. یا حدیت نداره اخباری, اخباری که ابدا قاعده به نیست ولی تمام اصولی این قاعده به و حالا اینکه قائل شدیم به اینکه این ظهور استنباطیه معنی چیه برای چی این اختلاف دارن و شبهه در چه مصدیه این خیلی مهمه این به اشکال یعنی شال اینکه این ظهور استنباطی بخاطر حیثیت داشته باشه یا نداشته باشه و موردش در چه مواردیه اینی که انسان شک بکنه که آیا قبل از رأس امام بهش رسیدن یا بعدش در این موارد بعضیا استنباط کردند که این قبل رسیده بعضی استنباط کردند که بعد رسیده بعضی گفتن معلوم نمیشه کدومشه ولی محکوم به سهته لذا چهار تا در اینجا مطرحه و اینجا میگن ظهور استنباطی قبل از اینکه از اینها رو بخونه اصلا به ذهن بنیوش هم است. اینها چرا در موارد شک که در ادراج امام من نمازم محکوم به بطلانه چرا محکوم به بطلانه چرا در عربه وقفای به بطلان داده اینها برگشتش به ظهور سمباتیه که قسم از زهوراته بنابراین ظهور حصولیه حسی حجیت داره اندل ظهور استحصالی حدثیت داره اندل اصولیی خلافن لده این خلی جمعه ولی ظهور سنباتی یقینا محل به به این معنا که اخباری اصلا نرون نبره و اصولی تماما نرون داره حالا خود اصولیی اینم اختلاف دارن که ما از اینها چی میفهمیم این تعبیلی که در روایت اومده ما ارام میخوانم بگیم ببینیم شخصی که فتوا اینه فتوا اینه, اینه ازاشک فی ادراکهی لِلِ امام به رکوب بطل از این فتوا که بطلان نمازه متوفف بر یک ظهور سماتی بنابراین اگر اون ظهور استنباطی برا صاحب عربه حسیت نداشت نمیتونست قاید بشه به اینجای نماز باطله اطلان نماز در این فتوا متوففه بر حسیت ظهور استنباطیه یعنی یک ظهوری که ایشون استنباط کرده این ظهور از کجا استنباط کرده تعبیری که در روایت از که نظاره که قبل، همینیت فعل امام رأسه که یک کلمه رفتی رق، در تعبیر اومده و یک کلمه قبلی اومده ما این قبلیت رو چطوری استنباطش کنیم های موضوعیت داره یا نداره برگشت این بحث به همون بحثی که در مقناسب رفتیم یعنی بنابراین اصول با فقه به هم تنیدن پار و پود همون مطلبی که در فقه همون منشأ اختلاف فقهاست یعنی بین مرحوم قویی و مشهور الان اختلاف اینه که آیا این نماز محکوم به بطلان باشه یا محکوم به صحت باشه یا احتیاط واجب اینه که یادمون کنه کدومشه برگشتش به اون بحثی که در مقاصد گفتیم که آیا حکم مترتب بر ذات یا مترتب بر ایمانه حالا به این ویم فقط ذکر است سید یزدی انه لو شک في ادراکه و عدمه ما طلب صلاه این عین تعبیر سید الیزدی در عمره و ظن که حالا چرا این قاعده به اوطلان شدن لعدم امكان الهوش به صح یعنی از هم به شهادت نمیشه نه جماعتا و نه این نماز اینطوری نه محکوم به اینکه جماعته و نه محکوم اینکه این که فراده است بنابراین یک نمازی نزی اما حض باشه نه فراده باشه محکوم به امکان حکم به صحت نیست نمیشه بگیم این صحیحه چرا؟ برگشتش به که آیا حوض مترتبه بر ذات یا مترتب بر انوانه این که مثلا میگیم بعضی استیحاش میکنم میگن این حرف نیست ولی در خیلی از موارد فخری بینید خود فقها استدلال کردن میشه یکیش محل برد بعضی ها در مقابل سید از دیر سهر چرا گفتن استصاب میکنیم گفتن استصاب میکنیم بنابراین محکوم به سهر میشه استصاب چی؟ استصاب میکنم امام در رقوع خودش باقی مونده تا من بهش رسیدم استصحاب بقا امام در حالت رکو ده دقیقه استصحاب میکنم تا بهش رسیده باشم. استصحاب بقا ایمان فی این مسترزم حکم به صحته؟ بنابراین من به رکو رسیدم از کجا که فهمیم امام در رکو بوده موقعی که من رسیدم استصحاب میگه بوده استصحاب بقا میکنه لذا قائل به صحتم؟ دیگه دیگه دیگه به یه دیگه قایده به این استثاب حجید نداره یعنی میگه من بلدم این استثابات رو ولی حجید نداره چرا؟ به خاطر شیخ انصاری یاد داده شیخ انساری قایده به عدم حجیدیت اصل مصبت اصل مصبت به چی میگن؟ اصلی که مثبت نباشه یعنی فوقه ها اسم چیزی که مثبت نیست رو داشتن مصفت. اصل مثبت یعنی چی؟ یعنی اصلی که مثبت نیست چیو مثبت نیست؟ لوازم خیل شرعی رو الاصل مصبت لا یصبت اینجا صفحه نوید و پنج نوشتن پایین صفحه که اصل مثبت لا یصبت چی اثبات نمی لوازم خیل شرعی رو لوازم خیل شرعی چیه؟ اینی که من بگم امام در رکوعش باقی موندت تا من رسیدم استثاب بقا امام رو اثبات میکنه منتها اون پسش اثبات نمیکنه. پس من به امام رسیدم این پس اثبات نمیشه شما این رکوع امام رو با استثاب تا قیامت میتونی بکشین ست سال بکشین در رکوع بمونه بنده خدا ولی پس شما بهش رسیدیم پس اثبات نمیکنه؟ پسی که ارمان که به نام گوسفنده این اثبات نمیکنه. کنن اصل مصفل یعنی این پس استثاب میکنم بقا بقای حیات ولد رو پس پدر قبل مرده این پس رو اثبات نمیکنه. این پس لازمه فیل شرقیه بهش میگن اصل مصفل از که میخواد این پس رو اثبات کنه میگن اصل مصفل محصیت نده بنابراین امام در رکوع مانده پس من لو رسیدم این اثبات نمیشه ولی در رکوع مونده اون 100 سال در رکوع مون استصحاب اثبات میکنه که در رکوع مونده ولی شما بهش نرسیدید به خاطر رسیدن شما به رکوع امام لازمه عقلی بقا امام اگر امام یک ساعت در رکوع بمونه عقلا شما بهش رسیدید کسی شک نداره چون کل نمازش پنج دقیقه بوده من استتابم یک ساعت طول کشیده. من استتاب بقای یک ساعته کردم برای رکوع ما. یقینا بهش رسیدم. عقلا بهش رسیدم. عرفن بهش رسیدم. ولی شعاره میگه نرسیدی. عقل میگه رسیدی. شعاره میگه نرسیدی. لذا میگه اصل مثبت لای این پس رسواه نمی کنه. اونهایی که به صحت نماز معموم در این موارد شک در ادراز و دلیلشون استصحابه استصحابشون اصل مسلمه لذا سياق نداره سید قائل میشه به عدم جریان استصحاب بنابر این نماز رو محکوم به بطلان میدونه حالا اثبات ادراک امام در حال رکوع متوفف بر دو چیزه اثبات ادراک امام در رکوعش متوقف بر دو چیزه یکی از اون دو اینه که امام در حال رکوع بمونه دوم اینه که رکوع امام با رکوع من مقارن بشه یعنی در حال رکوعش منم رکوع کردم یکی رکوع امامه یکی لهو رکوع من به رکوع امامه اینا دو تا مسئله اولی ثابتون بالوجدان که امام در رکوع بود من دیدم در رکوع و اختدا کردم و رفتم دومی رو در رکوع شک میکنم به جای ذکر رکوع شک میکنم چون عوام اون رو ذکر میگن ما شک میکنیم که آیا این رسیدم یا نرسیدین ما ذکر ذک ذکر واجب ما اجرای استصاب یعنی در رکوع شما استصاب داری کن استصاب بقای امام تا اینکه شما بهش رسیده باشی جز اول که امام را که باشه صابتون به نویش من به امام در رکوع صابتون بل استصاب و تعبود بنابراین موضوع ما مرکب از یک جزء رجدانی خارجی و یک جزء تعبدی اینها ها مختلف میشن با هم بیگه. مرکب میشن و موضوع ادراک معموم نسبت به رکوه امام تمام میشه و حکم مترتب میشه بزا یکی از این دوتا جز صاحبتون به که امام در حال رکوه من شک دارم من بهش رسیدم یا نرسیدم می میکنم رسیدن رو بنابراین موضوع مرکب ما محقق میشه و خورش برش متردد میشه و این نماز محکوم به صحت میشه حالا این موضوعات مرکب چیه و چی مخواست بگین تو نوید و پنج گفتم سفه نوید و پنج موضوعات مرکب هستن چیه و ما ادراک بر موضوعات مرکب موضوعات مرکبه نصف فقه ناینی نصف فقه ناینی موضوعات مرکبه و نصفش هم موضوعات مقیل بنابراین از موضوعات مرکبه و ما ادراکم از موضوعات مرکبه فا اینها آیت محکمه از ذل حال محبت و ناینی علال عباد اتماما للنعمه و للدین تا آخر آیه این آقا بخونن خیلی خوب تصویرش ادامه با خرابش کنه اینها قائلن به این حالا پنج دقیقه آقا بشینن اگه هر درسی هم میخواد برید و رو در تمام زمان باشه بشینید پنج دقیقه من اینو بگم چون بعضیا یه طوری میگن که یار به درس آقا میخوام برسم با اینکه این نیست واقعا پنج که بشین و اینو بگم این قاصر نمونه من فره. چون درد مخازه مطلب گرفته این اگه زایده نشه خراب میشه اینها اون که قایدن به سه هست دلیلشون استثابه اونهایی که قایدن به بوتلان چی میگن اونهایی که قایدن به بوتلان میگن ما اختلاف داریم خودمون یعنی سید یه دیو واقع خویی این اختلاف دارن که آیا این مترتب بر انوان یا مترتب بر ذات اگر قائل بشیم به اینکه حکم مترتب بر ذات رو امامه و ذات لهوق من به رو امامه در این موارد انسان میتونه حساب کنه ولی اگر باید بشیم به اینکه حکم مترتب بر انوان یعنی قدر رکعا قبل ان یل فعل امام رأسهو عنوان قبلیت رکوع من باید قبل از رفع امام باشه این عنوان قبلیت که در روایت اومده این با استصحاب قابل اصفاد نیست یعنی اونهایی که قائلن به بطلان مثل سید یزدی اینها قائلن به این که حکم ما مترتبه عنوان یعنی شما وقتی رکعت رو درکش کردی که قبل از رفع رفع رفع, رفع, رفع, رفع, رفع رسیده باشید این قبلی از انوانه این انوان لا یهرزو بل استصاب این انوان لا یهرزو بل استصاب چرا؟ بعضی ها قائلا به اینکه این حالت سابقه نداره این عنوان حالت سابقه که نداره ما بتونیم استثابش کنیم لذا قابل احراز نیست با استثاب ولی وضعه دومی من اینجا نوشتم براش و اون که این عنوان قبلیت اثبات نمیشه با استثاب مگر اینکه که استثاب اصل مصبت یعنی این عنوان قبلیت با استثاب مثبت اثبات میشه ولی با استصحاب آدی اثبات نمیشه با اون چیزی که جرایان دار استصحاب آدیه و حوصیت داره اصل مصفت حوصیت نداره بزا ما این عنوان وجودی رو با استصحاب اگه بخوای اثبات کنی میشه اصل مصفت. یعنی لازمه بقا امام در بکوه اینی که شما قبل رسیده باشید. این قبلیت لازمه عقلی بقا امام در بکوه و استصاق بخار اثبات میکنه ولی این قبلیت رو به عنوان یک عنوان موضوعی اثبات نمیکنه لذا اصل یعنی استصاق میشه اصل مثبت اصل که هم نداره حالا خیلی افخارشون چون ساعت گذشته هرشان حال این رو متعالیه کنید تا صفحه سخت این هم سخه 96 بود من داشتم میگفتم نه یه پیش مطالعه بکنید تا فردا از این اینا رو بگم خود نشه دلی؟ جوزه های, های برداره همه را ره مبسوط کنیم این یه تصبیر این درش حالا این صفحهات رو این از صفحه هشتاد و هفت تا سف اینا را بینید و بین الله و بینکن و بین الله خون بطاله کنید مباعثه کنید که فردا بیشه از پنجریقه وقت من نگیرد بله <تصفيق> این یه کاری بکنید امروز اینا اگه تکسیر بشه به نظرم خیلی بهتر از این بول و تو پول بدید اینا تکثیرش کنید من خودم پول داشتم اینا تکثیرش می کردم آقای خودشون پول بدن اینا تکسیر کنن برن مطالعه کنن روش تحقیل کنید فکر کنید تا فردش Ich glaube, <laughs>